علی مراد سلام اوای رفیق سلام وای مراد چطوری ممنون خوبم شما خوبین من خوبم ره. من دوباره زنگ زدم زن برای گپ زدم خیلی زحمت کشیدی لطف کردی خوانم. موضوعی داری یه موضوع دارم بفهمی احتیاط احتیاط آره متاد بودی سالا خیلی زیاد به چی به مواد مخدر اینا نه Okay. ولی مثلا به چیزای زیاده. بازی کردم، من این مدتی فکر کنم معتاد بودم. بازی با چش... اه... چی؟ با کامپیوتر. بازی کامپیوتری معتاد بودی؟ آره، الان یه چند وقت معتاد شدم اینکه این که میرم سایت دانشگاه چک میکنم استاد نمره رو زدن یا نه. <تصفيق> به طرز اعتیادآوری. خب این اه... چی بهت میده وقتی چک می‌کنی؟ اه... نمیدونم. ولی وقتی چک نمی‌کنم یه چیزی انگار ازم گرفتن. خب اون چیه که ازت گرفتن؟ همین دیگه وره همینه میگم اعتیاد اگه یه چیزی بود که میفهمیدم چیه میگفتم خب مثلا من همینه من یه نیاز واقعی دارم خب، اه اه بعضی از معتاد میدونن چی ازشون گرفته شده آه ولی خب دستشون نمیرسه بهش به جاش میرن مواد مخدر مصرف اه اه نه نه منظوره آره میفهم چی میگی ولی همون معتاد مواد مخدرم که هستن زمانی آه. که اون مواد بهشون نمیرسه این نرسیدن اون مواد رو حس میکنن دیگه آها آه اصلاح هم میگن یعنی رو خمار شده خمار شده آره حالا با جا... تو خمار چی میشه چی چی نیاد فاینکه میری سایت دانشگاه چک میکنی نمیدونم اصلا اعتیاد نیست راست میگی از این لحاظ اتیاد نیست ولی شاید یه های دیگه با یه ویژگیهای دیگه اعتیاد باشه چه شباهتی با چه ویژگیهای اعتیاد اینه که اولا ادم احساس خماری میکنه یعنی احساس میکنی باید این کار بکنم، ولی در این حال دستورات منتقدانی میبینی که نباید این کار رو ولی باید این کار رو یعنی هم باید این کار رو بکنی، هم نباید این کار رو بکنی. خب ببینم مثلا ما ما به عادت و لزوم نفس میکشیم. آیا میشه گفتش که ما به نفس کشیدن معتادیم؟ دقیقا من خودم به یه همچین چیزی فکر میکردم امه. که چرا نمیگیم اینا فرقشون چیه؟ انگار یه سری هم مثل معتاد بودن هن. ولی بهشون نمیگی. چرا مثلا نمیگی من معتاد دیدن مثلا خانوادمم من معتادم که هر هفته اونم به مامانم سر بزنم. اینو نمیگیم اتیات. ولی یه چیزای دیگه ای که خیلی شبیه همینا هم میگیم اتیات. آره بچه بچه‌تاملش چیه؟ واقعاً بچه‌توایزش منم هم سوالم همینی که چیه؟ شما ایده ای نداریم؟ ممم آه... من فکر میکنم که هر چیزی که خارج از کنترلت بشه تکرارش میشه اتیاد آها راست میگی یعنی هر چیزی اگر تو بتونی و زمانی که می خوای دیگه انجامش ندی انجامش ندی تو معتاد نیستی حالا هم... سیگار هروئین سیگاریو میگن که من معتاد نیستم تفریح می کشم اگر واقعا اینو بگن چون خیلی های هم, هم دروغ میگن آخه آره aksalan aksan اونایی که میگن من تفریح میکشی معتاد ترن <تصحیح> من به دوستم گفتم گفتم تو تفریح میکشی یا معتدی گفت نگاه کن من معتاد معتادم بگوفتم خب تو احتمال این اینکه مثلا یه روزی نکشی بیشتره تا اونی که من, میگه من تفریح میگم من تفریح میشم. خیلی معتاد تفریحیه. معتاد آفرین معتاد تفریحی معتاد شده مثلا. آره، به بند خدایی گفتن چی شد معتاد شدی؟ گفتم ما دوستا قرار گذاشتیم روزای تعطیل تفریحی بکشیم. بعد ام. خورد به عید نوروز و چه روزی <تصفح> آره این همون جوکای کلاسیکه. هم. جو... آره جوکای کلاسیک باشه اونجا. هم به تفریح معتادیم. آره ولی آره خب اگه یه روزی تفریح نکنی اشکالی پیش میاد میتونی یه روز تفریح نکنی ببینی من فکر کنم هیچ کاری نکنی به جز نفس کشیدن مشکلی پیش نمیاد آه اه مشکل... از در که مدت باز باید مشکلی, مشکلی تعریف کنی نمیاد. بلی مثلا به لحاظ روانی های آزرده میشی دوچار کشش روانی میشی مشکلی که پیش نمیاد باید بشن با... با... با... با... با... چی بشن؟ شاید من یا دوشار آزوردگی بشن اگر یه روز تفریح نکنن یا یه روز یه کاری رو نکنند. آره شاید اگه تعریفمون از اعتیادین باشه پس تف... میشه بگیم معتاد به تفریح آه... من فکر کنم یه شرط دیگه هم باید به اعتیاد اضافه کنیم. اینکه یه چیزی یه نیازی که قاهر مثلا با عمل A ارضا بشه به جای اون عمله ای میاد با عمل B ارضا میشه مثلا اعتیاد. میشه اعتیاد. چه مثلا فرض کن طرف مشکلات داره زندگیش بچه‌ش که مشکلاتشو رو بره حل کنه مواد مخدر مصرف میکنه این بجا بودنه به جای یه چیز دیگه بودنم انگار بعض وقتا توی اعتیاد تلقی شدن یه چیز نقش داره ولی تفریح فکر نکنم به جای چیزی باشه تفریح گفت جای ببینی اینی که تو میگی میفهمی چی میگی ولی ببین زمانی که شما فرار میکنی لزوما چیز نیست لزوما اعتیاد نیست شما یه مشکلی برات پیش اومده حالا یا نمیخوای یا نمیتونی. تو اون مقطع فرار میکنی ازش آره. حالا فرار میکنی به فیلم، کتاب، چیپس، نمیدونم هر چی. چقدرن نمره‌ی استادام. شکر. ا... این خب شما داری فرار می‌کاله، امکان داره خداگاهانه باشه، امکان داری ناخدا ناخداگاخانه باشه. ولی احتياط زمانی میشه که شما نتونی جلوی خودت رو بگیری حتی اگر بخوای. آها راست میگی حقش به نظر من اینه حالا نمی‌دونم شاید آره این که من دیگه دیگه توی احتياط باشه ولی شرط لازمش نیست. خیلی وقتا وجود داره توی اعتیاد ولی نه شرط لازمه نه شرط کافیه ولی آه. اه آقای سخواتی موضوع شما چیه حالا؟ موضوع دوستیه آها دوستی چه زیاد داری؟ من نه من خیلی دوست کم دارم اه. من کلا فکر میکنم مثل مولکول مثلا کربن که چهار تا میتونه بیتونه برقاره کنید <تصفيق> من اصلا ذرفیت دوستیم چهاره چهار تا داری واقعا؟ نه، حالا چهارتا ندارم ولی پنج تا بیشتر نمیشه. هست... چی میشه که پنج تا نمیشه؟ یکی که میاد قبلی میره. یعنی چرا اینجوریه؟ نمیدونم واقعا چرا. ش... فکر کنم ظرفیت روانیم تو دوستی خیلی پایینه. حتی توی مثلا شاگرد هم اینجوره. من مثلا بیشتر از دو تا هنر جت الان نداشتم. آه... حالا اون یه بحث دیگه است واردش بشو نشیم دارد. ولی ظرفیت دوست دوست داشتن رفیقیت روانی میخواستی؟ دوست داشتن نه دوست داشتن یه بحثه. دوستی منظورم یه نوع خاصی از رابطه اجتماعی. دوست داشتن دوست داشتن منظورم این دوست یعنی داشتن دوست نه دوست داشتن, داشتن کسی. داشتن, داشتن دوست, دوست رفیقیت د... توی اون یه لول مثلا لول لول داره دیگه. یه لولی هست اونم با همکلاسیه هم دوسته ولی خب نه اونجوری که مثلا با فلانی فلانی دوسته. خب نه ها، با لولش الان کاری نداریم. تو حلقه تانک داره ظرفیت محدودی من دارم ام. بعد دوست صمیمی. آره، دوست صمیمی. بعد اگه یه دوستی باصمیمی باشم، یه دوست جدید بیاد ظرفیتو نداشته باشم، اون بعد یه لول بره عقب‌تر. مثلا دوست یه ذره کمتر صمیمی. دوست دوستات آپگرید داونگرید می‌کنی. آره، آپگرید داونگرید. حالا دوست سمیمی به میگی؟ ده. چه شرایطی داشته باشه؟ شرایط من فکر کنم دو آین رو دی میذاریجللو همچ چه اتفاقی میفته <تصفيق> یه همچی اتفاقی حالا در کوچیک تر باید تو دوستی به نظر من بیفته حالا یا لاقل یعنی یه همافضایی باشه حالا همافزایی احساسی میتونه باشه تفسییح مثلا من تنها برم استخ یه نفر دیگم تنها بر استخ حالا با هم بریم استخ این با هم رفتن اگه یه همافزایی ایجاد بکنه به نظر میتون یه شرط خوب دوستی باشه یه نوع خاصی از دوستی ااده دوستی مسئله نه که خیلی چیز وسیع داره هی میشه انواع مختلف تعریف کرد ولی هم افزایی فکر کنم یه آپشن خیلی خوب باشه دو تا آینه رو بذاری جونه هم دیگه هم افزایی ایجاد میشه اه آره هی ای م... حالا آینه مثال خوب نیست من خودم موسیقی رو بیشتر میپسندم مثلا یا کنین یه ویولون و خب اگه یه سری 4 تا سیم شما داشته باشی باش ساز بزنی خب اه. اه هیچ صدای خاصی نمیده ولی اگه ببندی یه ویولون اه. شروع میکنه به صدا داد... صدای بیشتر دادن اینو امپلیفای میکنه خب پس میشه انتظارت انتظار یه دوست خیلی زیاده، نه،, نه؟ نه، برعکس. انتظارم از خودم تو دوست زیاده. <تصفح> یعنی نگاه نمی‌کنم ببینم اون من امپلیفای میکنه یا نه. من من رو اون هستم یا نه. آفرین، آفرین. اگه اون مثلا امروز یه لبخند کوچیک داشت، آیا اومد پیش من شد یه لبخند بزرگ؟ مه. تو چی چیکار میکنی برای اینکه این اتفاق بیفته؟ خب اینو یه بستگی به هر موردی داره. مثلا من دوستی دارم یه جوری دوست تجاریم با هم یعنی بیشتر دوستیم خیلی هم صمیمی با هم ولی بیشتر رابطمون یه کار تجاری تعریف شده بعد خیلی این فکر کنم اون کردن یعنی که اگه داری یه کاری میکنه و قرار 50 درصد سود کنه من با یه کاری کنم که بشه سود 60 درصد حالا یه دوستی دارم مثلا با هم دیگه میگیم می‌خندیم اگه این قرار مثلا یه ذره بخنده میاد پشیمون بعد سه ذره بخنده این باید اینجوری بشه از اون و نه، از ازوبر من خیلی انتظاری از کسی ندارم که حالا بگم نگاه نمیکنم ببینم کی برای من دوست خوبیه، نگاه میکنم ببینم من برای کی دوست خوبیم. این کنم مهمتر باشه. هیچ‌وقت با فکر کردی به اینکه مثلا دوستا کمند و بیشتر از این نیاز داری دوست داشته آره خیلی به این فکر کردم ولی نگاه کردم نه خب من این ویژگی منه، چرا من اینو خرابش کنم؟ من تعداد دوستای خیلی کم دارم ولی با عمق خیلی بیشتر. چرا اینو بیان مثلا یه جوره دیگه بکنم همونجوری که تو مثلا اه اه یه صحبت خوبی شما توی پادکست قبلی کردین در مورد تست روانشناسی گفتین من صحبتات شک... خوبه زیادی کم کدومشون اونی که گفتین در مورد تست شخصیت هیجو ماستر هست آه. آره آره, آره. گفتین که این تست باعث میشه که تو خودتو همون جوری که هستی قبول کنی امه. و بگی که اه نگاه کن من این و اینو من مثلا توی زمینه دوستی گفتم که خب نگاه کنین من اینجوریم من یه دوستی دارم که تعداد دوستام کمه ولی خب اینجوری هم دیگه بزار باشم چرا سعی کنم مثل اونایی که حالا کلی دوست دارن من علکی چیز کنم ولی شاید،, شاید این یه یه فاکتور شخصیتی این که من اینجوریم این مثلا درونگره برونگرا بودن نه. نه. فاکتور م... منظورم خاص بودنشه شاید یه که زندگی باشه شاید هم نباشه شاید یه چیز دیگه شاید باشه نه شاید شاید ببین من خودم دوستام خیلی کمه شاید بگم اصلا من هیچ هیچ هیچ دوستی ندارم حتی. ولی نگاه میکنم می‌بینم که شاید اصلا نوع برخورد من با کسی دوست شدن و دوست داشتن و دوست پیدا کردن منو به اینجا رسونده نه. یعنی روشتون یه روش چیزی نیسته. چرا من مثلا با این اه, کسی که نگهبان ساختمونه مثلا من دوست نیستم؟ چرا با کسی که من سوار تاکسی کرد دوست نشدم؟ چرا آره. اه, با هیچ کدوم از کسایی که باشون با همکلاسی بودم یه کلاسی رو رفتم یک کلاسی رو درس دادم نمیدونم بالاخره روبرو شدیم با همدیگه دیگه فرصت گفتگو پیدا کردیم چرا هیچ کدوم اینا الان من باشون با دوستم چرا حتی اونایی که باشون با واقعا دوستم مثلا ببین نشانه ای از دوستی وجود نداره یعنی ما ماها میگذره و با هم حرف نمیزنیم زنیم نمی‌دونم نمی‌شام گفت حرفی برای گفتن نداریم این از کجا میاد چرا اینجوریه من چند وقتش در همین مورد به یکی از دوستام صحبت میکردم عبارتی که به کار بردم این بود میگفتم در دوست دویه. ما ساگیز رانگ فارسییم موقع اه اه اه آره انگار یه, یه چیزی هست یعنی اوش. یعنی من یه حرفی دارم با یه نفر بزنم اونم دوست رو من حرف بزنی ولی به هم تلفن نمیکننی چیه دوستان است کجا میاد نمیدونم انگار یه جوری رو با هم داریم بعضی مورد من یه چند تا تئوری دارم دیولوب میکنم علاقه مندی که بشنبی من تئوری الان دارم اول بگم تئوری بینه که ما این برمگرده به همون احساسی که نداشتن پشتکار کافی حالا به اون تعبیر شما بعد این فکر کنم به همون برمگرد یعنی دوست داریم انگار همین شرایط الان رو حفظ میکنیم <تصفيق> من معنی که زاین نزنم به الان ما شرط کن همین گپ علی سخاوتی من وقتی زاین بزنم احتمال داره سه تا حالت پیش بیاد که دوتاش تاش بعد یکیش خوب ولی اگه اصلا زاین نزنم به هر حال, حال حالا یه حالت متوسطی سعی میکنم اون متوسطه رو انتخاب بکنم توی دوستی خودمان همین جوری مثلا الان به یکی از بچه‌ها می‌خواستم یه اس ام اس بدم بگم فردا بیا قرار بزنیم بیرون پنجاه درصد احتمال ناراحت بشه گفتم خب سه حالت داره که من اس ام اس ناراحت میشه یا میزنم خوشحال میشه یا هیچی نمیزنم که اون خوشحاله دیگه خب بهتر اینی که ریسکش کمتر انتخاب کنم یعنی یکی از دلایلی که باعث میشه ما دوست کمی داشته باشیم ریسک نکردنه ریسک نکردن آره امه. و خب مسئله اینه که اگه اون پنجاه درصد اون احتمال بعد اتفاق افتاد مدیریتش هم نمیتونیم بکنیم امه. اینم هست من خودم الان دقیقا یه, یه مشکل اینجوری دوستی پشت سر باذاشتم نی مثلا محکن... و یه دو دیگه پیش رو دارم و معلوم دارم فکر می‌کنم که اینو چه هندلش کنم که ولی چه مشکلی بعدی ممکنه فیش بیاد شما بهش اس ام مشکل بعدی همین دیگه اصلاً توهم این, این توهم مشکل بیشتر ام. یه احتمال خیلی جزئیه که وای نکنه نراحت بشه مثلا ولی ناراحت بشه اخرش برداشت بعدی مثلا بکنه اصچی مثلا مورد خاص با بگم همین همین موردی که الان داری میگی دیگه مثلا این موردی که الان, الان قراره پیش بیاد من یه آرشه از یک از دوستام گرفتم قرار بود یه هفته تست کنم بعد بهش اگه نخواستم پس بدم الان شده یه شما من میخوام بهش پس بدم خب و و اگه احساس میکنم اگه برم اینو بهش پس بدم ممکنه پیش خودش فکر کنه که این منو مثلا سر کار گذاشته منو بام بدرفتاری کرده من بی احترامی کرده پس دقیقا... ندی که بدتر میشه که چی خب پس ندی که بدتر میشه که مثلا یه تایم چون یه هفته گذشته یعنی من ورچه رو و پولشو بهش بدم آها من آها به نیت خریدن آره به نیت خریدن یک هفته تست داشت بوده بعد الان من الان نگاه کنین یه چیزی میفته ذهنم که نکنه دوستمون به خاطر این خراب شه نکنه بگم خب چرا من... همینو مستقیما باهاش کامیکیت نمی‌کنی آره دقیقا الان بهتره الان آخرین ایده‌ای که بهش رسستم همین بود که برم بگم نگاه کن این همش الان خیل تحسینه که یک کتاب به عنوان کادو براش بخرم به با باهم بش بدن و بگم یکی تو که دوست خوب من هستی بدون که این یک مثلا من گرفتار بودم که نتونستم اینو برات بیارم و حالا به این بهونه یه کادوی هم بش دادم یه یه جوری جبران کردم و و کمکش هم میدم که دوباره اینو بفروشه و حالا اینو میخوام بگم که نگاه کنین این اون مثلا این احتمالی که میاد تو ذهن آدم ایناست که وای نکنه مثلا ناراحت بشه و موجب میشه که مثلا من الان, الان خیلی از دادامون میگم تو همچین موقع خب دیگه تموم شد من این پول میدم و شده رو میذارم به دیوار اتاقم. برای چی برای که یه موقعی نکنه ناراحت بشه. این یه موقعی نکنه حف کنم خیلی چیز میکنه. آ, آ Carae, من آآ... آره من کاملا قبول دارم ولی مشکل من حادتر از این ارافم هیچ دوستی ندارم که به اینجام حتی رسیده باشه یعنی یا مثلا به دوستای قضیمی باید زنگ بزنم میگم سلام چطوری چه خبر و بعدم تموم بشه یعنی احساس من دیگه هیچ. پشتبانه یا فونداسیون دوستی نمونده که من روش چیزی بسازم. ولی در... حالا یه سه جالب بگم همین سیره دوسته اندکی که میگم ام. من یه هفته مریض بودم، خب به یه روز درمیون اینا بدون ای که من بگم خودشون متوجه شدن و منو دعوت کردن بیرون. خب اه اه و مثلا فکر کن از بین چهار تا دوست اینا دوتاشون تاشون متوجه بشن که تو حالت بده و دعوتت کنن بیرون و و یکیشون هم که من هنوز نمیزنم که الان خوبی؟ الان خوبی؟ مثلا فکر کنید این دوسته از صدای من فهمیده که مثلا من حالا بده اینجوری خیلی تبریکید میگم به حالا من هم واقعا از این دوستان خیلی متشکرم خیلی خوبه همچون من از هم این دوستان اگه صدای من میشنون ازشون تشکر می‌کنم. <تصح> <تصح> الان که نمیتونم بشنون چون پخش زنده نارده همه بشنون که هلا تهوریاتون رو بگیم من خیلی مهارم بشنون ببین یکی از چیزایی دوستی پایه های دوستی رو سست میکنه و دوستی رو از بین میبره منولوگه و همه ما من کنم در محصه خودمون و دوستیمون قربانی منولوگ میشه یعنی این, این،, این منولوگ بلای خیلی زیادی به سرمون میاره و ما حواظمون نیست که مثال بذارید اگه مثال مثل این میمونی که الان مثلا تو هرچی میگی من حرف خودم بزنم آها به هم گوش منتظر باشم که داستان خودم بگم و علاقهی هم به داستانهایی تو ندارم یعنی به جای گفت گو گفت و گفت انجام میدیم اه... حالا اسمشو هرچی میخوایی بزنید به همی که گوش نمیدیم دیگه گوش که ببین آخه گوش دادنم تازه فقط یه قسمت از ماجراست. ببین من فکرم با کسی که دوست میشی خوب. اولین شرطش اینه که شما یعنی به شکل خیلی صادقانه و صمیمانه یه علاقهی به وجود شما داشته باشه دیگه به هر چیزی که هستی به همه داستانات، شخصیتت، کارات نمیدونم عقایدت، هر چیزی که قیافت, قیافت، علاقه علاقمندیات حالا یه قراروشه من تو رو برایم می‌خوام که به داستان من گوش بدی. واضحتن دیگه دفعه بعد دیگه نمی‌زنی یا درسته؟ دفعه... با, با فکر کنم هم دیگه برایم بخوام که به داستانای هم گوش بدی باید من بعد دوستم دوستام برایم بخوام که به داستاناش گوش بده فکر کنم اینجوری یه ذره بهتر بشه. برای اینجوری مثلا من من خودم به معمولا به داستانای کسی علاقه ندارم. اه، و حشت همیشه اون کسایی بودم که برای بگی. علاقه نشون میدادن به داستان من آه. اه ولی خب شب بعدی مدت خسته شدن ولی اه واقعا هیچ وقت الان که نگاه میکنم یه علاقه مثلا درست حسابی مثلا به اینکه که هفته زن میزن میگم مثلا فلان کاری که داشتی میکردی چی شد پیگیریشو بکنم مثلا هرگز دبین داری... ببین من می مینویسم چهار ساله ده. اگر کسی وبلاگ منو بخونه خونده ولی من نمیدونم کسی دیگه ای که میخونه وبلاگ منو وبلاگ داره چیزی می‌نویسه. هیچ علاقه ندارم برم اونا رو بخونم آها علاقه داریم فقط برمه بل... بل... بل... بل... بل... وبلاگ. آره علاقه دارم فقط بنویسم و دیگران بخونم دوستیاتون مثل شیر آبه یه طرف هست. یه آره. هیچ جوی هم نمیشه چیزش کرد آره این چی تهاریه یک بود؟ این این تئوری خیلی مورد بسیار مهم و قابل توجهی بود. تو خودت شده که ایش وقت قربانی مونولوگ بشی؟ تو دو سال اخیر نه. دو سال اخیر قربانی شده این مسئله گوش دادن. یعنی یه چیزی بوده که من خیلی روش کار کردم تمرین روزانه کردم فکر کردم بهش نه نمیگم کسی رو قربانی مونلوگ بکنی نه کسی شما رو قربانی مونلوگ نکرده همین چون بعد از یه مجرای خاصی آدمما رو پیدا کردم اصلا که از دللاری کم بودن آدمایی دور من همینه که اینا احتمال اینکه منو قربانی کنم خیلی پایینه خیلی با احتیاطه الان همین دوستی که الان میخواام برم بهش این آاررش رو بدم مطمئنم که میگه وای نه این چه صحبتیه به تو برای من خیلی بیشتر از این حرف ارزش داری تو اصلا یه دوست خوبه منی کلا حالا این میشه تئوری دو این ته... یعنی این حرفی که تو زدی ما رو هدایت میکنه به سمت تئوری دو خوب. ببین دوست وقتی با کسی میشه به هر حال یه بین دو نفر یه احساسی یه محبتی یه افکشنی به قول معروف به وجود نیاد که این ابعاد مختلف داره حالا بین دو جنس مخالف، دو جنس، دو سن مخالف، دو سن نزدیکتر به هم، بین مثلاً چه میدونم یه برادرزاده امو بین یه خاله خواهرزاده اشکال مختلف ولی به حال یه یه چیز احساسی وجود اون وسط وجود داره که دو نفر رو فراتر از دو تا غریبه به هم نزدیک کنه خب حالا اینو اسمش رو محبت. خوب. که میتونه انواعی داشته باشه با توجه به همه این پارامترهایی که گفتیم با میتونه مدلهای مختلف داره آره حاله آره، مختلف داره عمق مختلف داره نمیدونم جنس مختلف, جنس مختلف داره, داره. هر،, هر چیز مختلفی که هر میکسی که میذاری توش این،, این یه, یه علمان ماجرای دوستیه یه علمان ماجره های دوستی که شما حالا از دید خودت و از زن خودت در اون دوست یک چیزی رو می‌بینی. این امکان امکان داره حس کنی که این داره به دروغ میگه، فریبت میده، خیانت میکنه، نمیدونم علکی ازت تعریض میکنه، هر چیزی مثلا میدونی که این داره میگه وای این حرفا چیه این آرش اصلا مهم نبود، فرایه. ولی امکان داره یه ذره 1 درصد حس کنی که نه این واقعا اینجوری نیست، این نیستی واسه مهم بوده و این داره به خاطر دوستیش این حرف رو میزنه. متوجهم ازم میشی؟ بله. ولی رو به اون بخش اول لف نمیاد. آخه یعنی یک به خاطر اون دوستیه داره یه خودش نیست دیگه. حالا مسئله اینه که چون چ... چ... چ... قاعدتا شما میخوای با کسی دوست بشی که یک میزانی از صداقت هم با شما داشته باشه دیگه. بله. حالا المان اول شد محبت، المان دوم صداقت. حد بعضی وقتا انگار اینا با هم جمع نمیشن. علمان... آها. مجبور میشه به خاطر دوست صداقتش رو بذاره زیر پا یا به خاطر صداقت, صداقت رو از بین ببره ببین اگر شما هر اون چیزی که میبینی در دوستی بگی خوب. و به به اون شدتی که حس میکنی بگی خوب. قاعدتا دیگه دوستی نمیمونه آها راست میگی و بعد یه ذره اینا رو چیز کنی چهجوری این این ترید آفش به قول انگلیسی یا این تعادل این نقطه تعادل کجا یعنی از کجا مثلا اینو قربانی قربانیون صداقت رو کی ت... باید قربانی محبت کرد محبت محبتو کی باید قربانی صداقت کرد یه یه چیزی داره یه حالت خیلی یه نقطه خیلی حساسی هم هست <متصف> یه ذره بیایم این ورتر و خب یه جایی هم تعریف اونو از این دو تا یه ذره عوض کنیم مثلا یه ذره محبتتر و الان من نگاه میکنم خیلیو اگه بهش بگی که این مثلا یه چیزی چسبیده اینجا یه عاشقالی چسبیده مثلا رو دندونه خب اینو مخالف محبت تلقی میکنه در صورتی که اینجوری نیست یعنی حالا این مثال ساده‌سا ولی این در این حال محبته یعنی یا اگه مثلا می‌گی که نگاه کن و... ولی هر کسی از... از زن خودش یار شما شده یعنی شما نمیتونی انتظار داشته باشی وقتی بهش می‌گی آره محبت ما یکی باشه آره وقتی بهش میگی بالای چشمت ابروه شما امکان داره اینو به عنوان یه جمله خبری گفته باشی ولی اون اینو به عنوان یک توهین برداشت بکنه آره اینم هست و بعد تئوری سوم اینکه همه آدما یه نقاط ضعفی دارن یعنی شما با کسی که خیلی از خودت بهتر باشه دوست نمیشی و اونی که خیلی از شما بهتره تو یه سری چیزا حالا هر کم با معیار اندازهگیری خودش میتونه مثلا مهارت باشه میتونه سن باشه میتونه ثروت باشه سروت میتونه قیافه و ظاهر باشه میتونه هوش باشه میتونه, میتونه باشه میتونه زیبایی باشه، میتونه رابطه اجتماعی باشه، میتونه موقعیت کاری باشه باشه آره اگر خیلی بالاتر باشه اون که با خیلی پایین دوست نمیشه اگر احساس کنه دوستش نسبت به این چه میدونم یک ذره احساس حسادتش رو برمی بعضی وقتا احساس کنه که مثلا نسبت به این یه قضاوتی داره به حال همه آدمیم آره آدمیم و اه، در در یه رابطه به بخوض وقتی طولانی مدت میشه بعضی وقتا شما خبردار میشی که دوستت به یه دستاوردی رسیده که فکر میکنی چرا این, این حق تو بوده چرا اون به آورده چرا این مثلا یه همسر زیبا داره که تو نداری چرا این ماشین رو سوار میشه چرا این اصلا این جمله رو این جمله رو چرا این گفت من بایم میگفتم این مثلا جش رو این چرا گفت من, من میگفتم بهتر بود مثلا این این لباس و این پوشیده الان این مرکز توجه این خیلی خوشتیده یه جورایی حسادت ببین بعضی وقتا حسادته بعضی وقتا نفرته بعضی وقتا چه میدونم امکان داره احساس تحقیر یا یه جوری از بالا به پایین نگاه کردن باشه خیلی وقتا میدونی که طرف داره اصلا اسمم یه دورویی روئی می‌کنه به خصوص که پای مثلا یه دوست سومی هم وسط باشه و و تو میگی می که این این آدم دو مثلا این خورحوری مذهب یا نون به نرخ خرسپره مثلا با حسن یه جوری حرف میزنه مثلا پیش حسن که میرسه مذهبیه پیش من که میاد مثلا کپیتالیسته آه آه، آه. و،, و بعد اینو مثلا امکان داره اولا امکان داره برداشت اشتباه باشه و قضاوت بکنی ثانی هم امکان داره برداشتت هم درست باشه ولی چه جوری بگی به کی وای بگی حالا بگی بعدش چه اتفاق میفته بعدش چه دوستی خراب میشه من به بقیش. هر حال دوستی خراب میشه ولی اگرم نگی خودت کانفیوز میشی که آیا اصلا دوست خوبی هستی آدم صادقی هستی چیکار باید کنی دوباره یه, یه جایی همون بین صداقت دوستی یه قرار گرفتون <تص> آره خیلی به حال ببین به عنوان یه آدم ما عصب به بخصوص در ارتباط با آدمای دیگه و این آدمایی دیگه اگه دوستمون باشن و نزدیکتر باشن دوچاره احساسات مختلفی میشیم. بله. این احساسات چیکار بر کرد آقای استخوابتی اگه آبشو پیدا کردیم به منم بگیم <laughs> واقعا با من با این احساسات چیکار کنه؟ من با خواهر و مادر و بابام فهمیدم اینا رو چیکار کنم خب چیکار می‌کنیم با اینا؟ بالاخره یه کاریشون میکنم هر کدوم یعنی اوج هنرم تو زندگی اینه که مثلا این احساسات رو با اینا یه جوری چیز میکنم ولی از این درجه یک رفت بالا شد خاله و عمه و عمو دیگه دوست که پیش کش. دیگه واقعا نمیدونم با این احساسات با آدم چیکار کنم. خب یه مورد از اونا بگو شاید کمک به ما بکنه. از کدوما؟ همین با خواهر و پدر و مادرت آها مثلا اون پادکستو پادکست رو نشنم گفتی <تصفيق> مگه معرفی کردی داشتون خواهرم که الهام احتمالا گوش بده ولی مامانم نه خواهرم که میدونه مثلا یه چیزی که من فهمیدم اینه که توی احساساتی که آدم پیدا میکنه یه جوری باید آدم کجدار و مریض هم حرفشو بزنه خوب و هم نشون بده که ببین این حرف من از روی محبت این صداقت من از روی محبت این مثلا مهمترین استراتژی که من با مامانم دارم یعنی میگم مثلا مثلا مثالای ساده غذات مثلا بعد مزه شده یا قبلنا غذا خوشمزه تر بود یا تو مثلا با من بعد رفتاری خوب این حرفو بش میزنم ولی در این حال از یک ساعت قبل و یک ساعت بعدش دارم نشون میدم که نگوه کنم مامان این اوج محبت من به توه و اگه من این کار میکنم برای اینه که بازم دوستت داشته باشم mm -hmm. اه و یه جورایی خب اونم خیلی آدم منطقی و خیلی آدم اوکیه این اینو متوجه میشه ولی خب توی بقیه نمیشم چی کنی کنی کنی توی نمیشه مثلا من الان میگم که آقای سخابتی مثلا من فیلان بهت میگم ولی به خاطر محبت من به توه ناراحت میشه دیگه همم <تصفيق> بسیار خب. مسئله خیلی... دوستی مسئله پیچیده ای شد. من فکر میکنم انقدر پیچیده باشه. <تصفيق> hey, هر چی بیشتر در موردش صحبت کنیم بیشتر پشت دیگه هاشون نشون میده. آره، شاید اصلا نموادن کرد و تئوری پردازی کرد نه خب حالا بازم خوبه که لااقل متوجه میشیم که انقدر پیچیده است. انقدر ساده باش برخورد نکنید. حالا دوست داری با من دوست بشی؟ اه... آه... آه... آره. <تصفيق> شرکنا ام اون اون اولش یعنی چی یعنی مکسی کردی نه اولش داشتم چک میکردم دیدم ظرفیت دوستی الان داره میاد نه داره جای, جای خالی داره الان جای خالی داره همون تا چند تاشش پر شده از اون 4 تا الان یه دونش خالی شده اخیرا یه دونش خالی شده آره اوکاس میگه که بیا ای سوتدل با هم بنالیم الان شما مشکلات دوستی تو که گفتی من دیدم که ما میتونیم به جای دو تا سوتدل با هم بنالیم, بنالیم. میتونم یه فصل مشترک و دوستی ما باشه آره فصل مشترک باشه بسیار خوب نالیدن برای این جلسه ما فکر کنم کافی اجازه بدیم خیلیم. دیگرانم بیان ببینیم چی میگم خیلیم. فرصت بریم خب خیلی خوشحال شدم منم همینطور لوتگر دیزنگ دادیم خواهش میکنم بردان. خواهش میکنم خواهش میکنم برگانه خواهش میکنم خواهش خیلی ممنون شما خوبین سلامت باشید. فقط می‌خواستم ببینم با شما صحبت کنیم اه... من صداتونو یه بعد بد می‌شنوم. میشه این جمله آخرتون رو بلندتر تکرار کنی؟ الان میگم صدا خوبه؟ الان بهتره بله. آها، آخه روی اسپیکر بود. چون خیلی آهنگ داشتون زیاد. من هم گذاشتم روی اسپیکر فکر می‌کردم که گوش‌اور دارید. شما پشت خط بودین یعنی من با کس دیگه ای داشتم صحبت میکردم دلسته. خوبیم سلامتیم خیلی خوبیم خیلی ممنون شما چطوری؟ قربان شما برم آقا محمد از کجا تماس میگیرین من از قزدین از قزدین همشهریم تست همشهری بلا نمیدونم من که قزدین زندگی نمیدونم آقا قزدینی نیستی من قزدینیم ولی قزدین زندگی نمیدونم <تصفيق> من قضیمی می کنم من این رو نگی خب پس به حال در کلمه قضیم این جملات مشترکه بحب. آره، مشترک خب شما موضوعی دارین برای این پادکست؟ آه. موضوع شاید تا چیز غیر مرتبط به ذهنم داری خب شاید موضوع خود شما رو بدونم بهتر بتونم بسیاره ببرکنم خب نه موضوع من به شما میگم حالا آره شما موضوعات تو بگو یا یه دونش رو بگو آه. موضوع امیتاً این بازی کردن، این که خیلی چیز خوبی یک دایی وقت دار بازی کردن خیلی چیز خوبی آره خوبی. خب این کشف یه جمعه خبری چون <laughs> میخوای راجبش صحبت کنیم یه موضوع آه باور میکنی آدم قلط میکنه من همیشه فکر میکنم وقتی گوش میدم میگن چرا اینا چیزی به ذهنشون نمیریه تو وقتی انتخابات ولی واقعا آدم زنگ میزنه قلط میکنه وقتی یه موضوعه واقعا گفت میکنه شیش تا گفت موضوع دري حالا میخوای من موضوعم بدم خیلی خوب آره آره شما آره، موضوعاتونو بگید دیگه من شاید اون وسطا چه چیزی اضافه کردم خب بذار قبل اینکه موضوعم بگم چیکار میکنی قزمی حقیقت ماجرا این است که فعلا جز اون آدمایی هستیم که چه جورایی میگن بیشغلن راست منم اینجا و به خاطر کار پدرم اومدم یه چند سالیه و دیگه مونده شدیم و یکی تا چند روز دیگه هم در خدمت و سربازی سرمیذارم. آهان این منتظری که بری سربازی؟ آره دیگه یک 12 هم و گفتم قبلش یه زنگ به شما بزنم. خیلی ممنون. محمد دوست زیاد داری موضوع این هفته دوست. دوست، دوستای حقیقی شاید خیلی کم داشته باشم؟ دوست، دوستای چی؟ عذابه دوست تو آفلاین، حقیقی در محیط آفلاین. دوستا آره. بیشتر آنلاینن. بیشتر آنلاینن و شاید این دوستی یک طرفه باشه. یعنی های دیاری رو می‌شناسم ولی شاید لزومن واقعاشون دوست صمیمی هم نباشه. در, در در محیط آفلاین دوست سمیمی داری اصلا؟ دوست صمیمی آره آره. مثلا یه دونه از محیط دانشگاه هنوز با هستش. آره دو سه تا دارم مثلا آره دو سه تا چیزو دارم خیر سخت با کسی دوست میشی نه تقریبا خیلی راحت ارتباط برقرار می‌کنم با دیگران اه حتی اه مثلا تو تو تاکسی نشستم با کنالیم کانالیم هر باشه به راحتی می‌تونم باهاش ارتباط برقرار کنم چه کوچیک چه بزرگ ولی خب سخت دوست نشم نمیدونم چرا افتر... ارتباط و... ارتباط برقرار کردن حالا یه چیزه ولی با همون راننده تاکسی که ارتباط برقرار می‌کنی یا دوست می... دوستام میشی نه نه آره سخت دوست میشه سخت دوست میشه چرا سخت دوست میشی؟ نمیدونم شاید چون ارتباطمون خیلی کمه خیلی شناخت نداریم از هم دیگه خب به حال همه یه روزی ارتباطشون کم بوده شناختشون کم بوده ولی اجازه دادن که این بیشتر بشه و با هم دوست بشن نمیدونم شاید خیلی میدم گوشه دیرم شاید خیلی تو محیط بیرون نمیرم شاید به همین دلی دنبال این اون مالی نیستم که اون رو بریم به دوست پیدا کنیم. ساعت تو فلان چه میدونم تو دانشگاه تو محیطی چه می دونم تو حالا همون همون هایی هم که داشتی در محیط بیرون بودی فرصت هایی که برات پیش اومده استفاده کردی با کسی دوست شدی دوست موندی آره آره دوست موندن ولی مثلا یه پروژه‌ای بوده با یه دوست شدم ولی اون پروژه تموم شده رفته تناوبت مثلا چون بعد مثلا هم داشتیم چیزی اصلا تند دیگه ندیم میگه ده... ولی خب دوستای با هم بود. آره ولی مثلا آیا با تلفن، ایمیل یا ابزار دیگه اینو پیگیری می‌کنی دوست داری یه تلاشی بکنی که بری ببینیشون آره مثلا آره مثلا چند تاشونه مثلا بعدا حتی باید از اون پروژه دفتم دیرمشون ولی آره خب یه حسی هم که دارم اینه که مثلا نگه می تو مدام بهشون سر بزنم شاید حس کنم که مضاهمشونم مثلا همین خیلی دوست ندارم یه هو برم خوا خب از کجا می‌فهمی که آیا مزاحمشون نیستی؟ چقدر بد سر بزنی. باید؟ خب از اونجای این روزها آدم‌های چند پیدا شدن که مثل شما خیلی وقت زیادی داشته باشن. ها اکثرا درگیر یه زندگی ماشینی شدن و مدام و مدام دنبال همین می‌گردن. انگار یه فرمول داره، همین تو این رو می‌دونن، می‌دونن و وقتی که تو به سر می‌زنی اوکی. تو دارم ولی تست می‌کنی که یه جورایی میگه اوکی فقط یه سلام هم داشته باشیم، از میگه خب حالا ب... اول اینکه که از کجا میدونی من وقت زیادی دارم؟ اخت آزاده زیادی دارم. بعد اینو فکر کنم خودم گفتم جایی؟ نه، خود من کاملا می حس میشه حسش از میز ادلاگتون آره وقتی که هیچ شغلی نداریم و ساعت های زیادی رو کتاب میخونیم یا به در دیوار خیره میشیم یا چه میدونم همین پادکستو داریم می راه میندازیم اینجلاقا مثلا که وقت زیادی خب ولی خیلی هم وقت زیادی میذارن رو فیسبوک و میجونم سوشال نتورک آره آره اشتباه به نظر من اشتباه محض. نه حالا با اشتباه درستش کاری نداریم ولی به هر صورت این نشون میده که به اندازه کافی وقت آزاد برای حالا سوشالایزینگ و روابط اجتماعی دارن دیگه. آره دمید. وقت می‌ذارم ولی میدونی یه حسی میگم هم باز همون حرفام تکرار میکنم انگار تکرار ماشینی شدن. یعنی ما توی زندگی ما مثلا توی تهران خیلی آدم به چشم میبینین. حالا من که قزوینم می‌ذارم اینجا بهتره ولی تهران می می‌بینیم. اولا ما بی خسته فقط می‌دونن دنبال اینن که لقمه نون بگیرن بیشتر پول اینور چیزها یه زره آدمو کلافه میکنه یعنی به نظر تو بزرگترین چالش دوستی الان اینه؟ آره یه ذره آدما میتونن میگم که امسادیت نشه حتی بدی باشه ولی یه زنه در درجه انسانیتش اومده پایین‌تر. یه ذره تر شدن نسبت به بقیه فقط الان خودشون مهمن. حتی حتی به درجه میشه که حتی خانواده نزدیک آدم یه زورایی بخشن رفته تحت شما تو سایه تو تو تو اینجوری میدونی؟ یا این فکر سیک میکنی دیگران؟ من خیلی دغدغه خودم تیم نتنا دقدقه خودم و اطرافیانانم دقدقه جامعه رو دارم که خیلی داره به ضربه میزنه خب این دغدغه کجا نشون میده؟ هر جایی من هر جایی که برم سرویس بعدی رو دگیرم میگم ای کاش میشد مثلا میدونم که میشه اون سرویس رو بهتر کرد مثلا اگه بیمارستان میام این هم سرویس خوبی نمیگیرم اگه تاکیر میگنم من تاکیر و دخلاقی یا اگر کسی بیمارستان پول نداره یا که میگنم پسر بچهی توی خیابون نشسته و داره کتاب میخونه و چیز میشه میگم ای کاش اینها دور جور دیگری بودن این،, این کلیه کاری که انجام میدی ک میگم این ای کاشه کلیه ای کاریه که در نه انجام دقدره نه نه کل کاری نیست حقیقتاً ولی در حد توانم خیلی آرزوهای بزرگی دارم خب در حد تبانی چی کار میکنی در حد توانم مثلا دارم میگم یه دم دمای ای بود مثلا یه پتر همون که دارم میگم میشسته بود و داشت کتاب میخوند من کاری که من مثلا فکر می‌کنم که سیبی که توی کیفم شده حداقل یه سیبی بخوره. بهش پول نذارم چون عادت کنه ولی یه سیبی دادم که بشه. اها. افش... افست... اه، اوکی، اوکی. چجوری می‌تونستی مثلا با اون بیشتر دوست بشید؟ آه... با بچه با بچه‌ها میشه از بقیه خیلی چیزا دوست شد. با شکلک دراوردن، چه میدونم با مسخره بازی، با اسمشونو فوت با اینکه چه آرزویی دارد حتی مثلا با یک بار با یک بچه در فروشی دوست شدم. با هم نشفتیم و سر اینکه که کدومونی و بهتر بازی میکنیم بخش میکرد واقعا؟ واقعا و خیلی استرکات جالهی بکنیم یعنی یک کپش کارکوره اتنجا دارست من هم گفتم اتفاقا من هم یک کپش که دقیقا همون ننگهی سمتی که مانده تو سوارت من هم کنم <تصفيق> از دفتیم و خندی نمیم گفتگوی دیگه ایم بینیتون اتفاق افتاد. بگو اگه هر بعدش دیگه هم دیگه با هم صحبت کردیم و گفتم چرا بهش داری کار می‌کنیم؟ گفتش که خونه نداریم. بعد منم گفتم خب ما هم خونه نداریم. گفت مجبوریم دیگه باید کار کنیم. خیلی از اصن از زنده خودش بیشتر میفهمید بود. اه. بعد اه سعی کردم هرچند این جمله خیلی خوب نیست که برو درساتو بخون ولی بهش میگفتم که اوکی کار بکن، خونه بخرید به بابا کمک کن ولی هوای خودت هم داشته باش. ا تو بس کاری سلام کاری مثلا روزی 2000 20 تا من کار می‌کنی حداقل روزی 2500 تا خودت درآمد و, و همشو به بابات ندا عکس ولعمنش نسبت به این حرف تو چی بود هیچ فقط سر شده تو کندم آره منو خسرت بهش گفتم من نمی تهران من می‌داشتم بعد معمولا بعد از اورا فام نمیجام یه سایه نمیجه هایدا می‌خیرم می‌داشتم می کیفم نمی اومدم راه میخوردم بعد بهش گفتم شام خوردی گفتش که نه بعد ترجیح بدم که فام نمیدمم اون و خیلی حس خوبی این کار مهم مهم خوب هست قبول من به قاعده کردیم ما ها. ام ام با با اطرافیانت هم دوستین مثلا با پدر مدرش و کسایی که بهتون نه شاد خیلی کمتر شاد خیلی کمتر شاد خیلی کمتر دوست صمیمیشی نه یعنی هر هر ثغث راحتن میتوانم با قلیب ها ارتباط دغل کنم خیلی شاد سخت با عزیز خاله خب این دلیلشه آه چندم هست که این صداسی حسن چند سال های اخیر سنم بیشتر شده نزدیکیه بیشتر شده ولی مثلا سال دیگه 5 سال پیش این سوالو نمیپرسید می دونم اینم بیان با پدر مادرم غیرت سلام علیکم صحبت دیگه ندارم. آره من اینجوری بودم منم آره مثلا اینکه اکثرا نمی دونم شاید یه دورانی ها آره یه دورانی آره آدام دوست داره همش بره بیرون. من یه کاری کرده بودم یه فایل اکسل داشتم بعد خیلی خودم یادم فقط 8888 یه فایلای رو بخیردن گفتن که میخوام کل مکالماتی که مثلا توی یه مافو پدرم داشته باشم ضبط کنم آقا سلام محمد اصلا فقط مثلا سلام خوبی خدافظ یعنی هز... از این صد کلمه بیشتر نرفته بود مکالمه ای خیلی هی هم جالب بود که مثلا یه ماه یه پدر یه پسر فقط سلام خوبی خدافظ آقا پدرت همش تلاشی نمی‌کرد برای اینکه اینو بیشتر کنه تو فقطش می‌ذاری پدرم درونگرا هست کلاً گفتم اون دو اما از اون طرف هم از این ور ولی خب چیزی چه بگم یه ذره حالا بهتر شده. قطعا الان خیلی بهتر. الان اصلا قابل مقایسه نیست اون چه چیزی تعبیر کرده؟ من یه ذره راحتتر نزدیک میشم قبلا خودم مقابله پدرم میدیدم الان خودمو در کنار بذارم. بعد گفتگوهاتون خیلی فراتر از اون سلام علیکم رفته؟ خیلی مثلا یهو مثلا پدرم میگه مثلا خونه بخرم، ماشین بخرم، فهمم از اونجایی که توی بیزینست هم با هم دیگه هستیم توی بیزینست هم با هم دیگه صحبت میکنیم این تبادل هست به مثلا با هم مشورت میکنیم پیشنهاد من میدم اون ترک میزنه و این خیلی خوب است. پدر دوست دیاد داره؟ در, در جوانش رسید باز قخایی بوده ولی خب الان خیلی کم خیلی کم بعد راجبه اینا با هم صحبت میکنیم که مثلا در جوانشیم این... و اصلاب عبادة. اصلاب عبادة. <تصفيق> اصلا و اصلا و یه ذره مانت بگی مانت بگیم مانت بگیم مانت بگیم جالبه نمیدونم من خود من دوست خیلی کم دارم و فکر نمیدونم موزلی باشی که دوست کم داره ها <تص> مثلا اینم مثلا یه این سوالی میبینی دیگه انقدر دوستا آدمو کلافه میکنن دیگه مثلا یه سلام علیک دوست دشتنی کس دیگه چرا باید شما رو کلافه بکنه یعنی مثلا من اگر 100 تا دوست داشتم چرا باید شما داد چرا خیلیه مثلا نمیدونم این مریضی رو من دارم که قضاوت میکنم واسه طرز تفکر آدما که نباید بکنم ولی خب احساس میکنم مثلا یکی که میشنافم انقدر دیگه دوست داشت که میگم خیلی دیگه سختی شده من سلام میکردی دیگه با دوست میشد ولی <تصفيق> <تصفيق> فکر نمی کنم این باشد مثل سایر موضوعات بشری اینکه که آیه دوست کمی بهتره از آیه دوست خب ولی ببین اه، باید. اه، باید. اه، ما تو همه چیز به به به یه سمت و سوی میل می کنیم دیگه یعنی منظورم اینی که تعادل رو از دست می دیم. حالا یه نفر تو خوردن زیادی میخوره اضافه آره، وقت پیدا می کنه نفر کم می خوره آره افرادتر آره کلمه شییم بود حالا این تفرید خوبه یا افراد خوبه یا اون حد وسط خوبه اصلا نمی... نمیخوام بگم کدومش خوبه ولی این این چه جوری میشه که بعضیا راحتتر دوست پیدا میکنند بعضیا گیری میکنن در مورد اه... همینا ها... همینا من به شخصیت اومادم شخصیت اومادم در یه زندگی در ساده چون پدر مادر در ساده دوستان در ساده چیزایی که خونده چیزایی که دیده چیزی که زندگی کرده و و فکر پیش دیگه مثلا تقرار وجود بودود اومده از که حالا آنطایه راحتتر دیست میشه یکی دیگه نه خیلی سخت تو دوست مثلا خیلی بزرگتر از خودت یا کوچکتر از خودت هم داری؟ آره مثلا دوست بزرگتر از خودم که مثلا داد آدم مثلا چهتی یا پنیز سال مثلا داشتم اه هم. که دوست کوچکتر هم خب معمولا دارم دوست شاید شاید اینا دوست حساب نکنیم مثلا پسرمو یا دخترمو خیلی کوچیکه مثلا تو سه سالگی باهشون دوست حساب نشه اصلا اصلا چی باید باشه که بگیم این دوست حساب میشه؟ آه. دوست حساب. همین که باش فکر کنم ارتباط داشته باشی و این ارتباط بیش از حداقل قلباری. شکل چه باشه و مثلا بیش از حداقل چی؟ بیش از حداقل با مثلا بیشتر از یکی دو بار <تصح TON> دو بار با اون آدم سلام علیک داشته باشه ارتباط داشته باشه که می زندگی روز مربه داشته باشه یعنی که باید زندگی کنی میشه گفت دوست دوست دوست دوست. نمیشه مثلا با یه نفر که تو قید حیات نیست مثلا چه می دونم داستای افتگی آدم دوست باشه؟ آه می ششش نکردم حالت ماجرم میشه اون اون را یا مثلا نیکول کیت من بدون اینکه ببینیش می شه اون را دو... دوست داشتش فرما نمی توش داشتون چون فکر هم دوستی یه تا رابطه دو طرفه فکر ده؟ کنم یه طرف باشد که بخواهمیم ما یک طرفه کسی که اصلا راج ما اصلا هیچ چیزی چاید ندونه و اصلا ندونه ما وجود خارجی داریم اما فکر کنیم که با اون دوست آره، آره واقعا چیده شد؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> آره صحبت ما همین روابط دو طرفه دوستای رو توش موندیم نمیتونیم حل کنیم چه برسته یه طرفه من دوستان مثلا الان با بعضیشون ماه ها صحبت نکردم و نمیدونم مثلا باید زنگ بزنم بهشون چی بگم و واقعا هیچ انگیزهی هم ندارم نسبت به این کار دبیدنه. به نظر تو من چی کار بکنم دقیقا من هم همونطوری خیلی دوستای هستن که واستون به نظر من چیزی که خیلی عنصری که خیلی میتونه کمک کنه کافل گیریه یعنی من میکنم میکنم اینکه شاید توی روزی خاصی قافلگیریش کنی اون دوستت رو خیلی راحتتر بشه باشه تو دروازه یعنی از تلفن و چه میدونم پیام و اس ام اینها بگذرد به ویژه ای بیفته اتفاق ویژه بیفته آفرین آفرین خیلی خوبیه مثلا اینکه چه میدونم یه دفعه تسلیم و واسه یه دونه دوستت از یه دوست دیگه زنگ من کاری که کلا به یه دوست دیگه هم زنگ بزنم آدرس اون یکی دوستم هم آدرس دفترم اها یه دونه ماکس فرستادم اها بعد خیلی خیلی خیلی حالش خوب شده بود مثلا واقعیه یه دوستم مثلا یه سری یه پروژه‌ای داشتیم یه سری عکس دادم روشی فرستادم و بعد اون با هم, هم زنگ زد ما هم صحبت کردیم کلا خندیدیم حس خوبی گرفتیم اگه یه خی... کاری گیرش بشکنه دیگه یعنی فری فایر معمولی که همین یه اف ام اس کاری که به میشه کرد از این اف های آماده است که واسه دوستاتون ارسال کنید آره من هرگز از این کارو تا حالا آره آره کردم ولی خیلی جاشاوره آره خیلی بده خیلی, خیلی بده. بده آره بذار با... یکم راجع به چیزهایی بعد تو دوستی صحبت کنیم دیگه چی بده تو دوستی علاوه بر این اس های آماده یه ذره دو هم فکر می‌کنم خیلی بد باشه. دو روئی. ولی همه تو حدود دو رو هستند یعنی سن؟ دو هستن. من چه هستم؟ تو رو نمی‌دونم. آ دو رو هم هستین قطعاً ولی دیگه این دو رویا درصدش مثلا درصد تو فیزیکی خیلی که مراحل تاسیتی میل نکنه. یه ذره شفاف باشه یه ذره آدم نیازه که خیلی فشار به جسمی تونه که خیلی فشار به نگه. خیلی فرض بگه این وسط واسه فکس بشه ولی فکر اگه خب همین این, این پیدا کردن این نقطه بهینه کجاست که این, این یه مسئله خیلی پیچیده انسانی فلسفیه و ما هیچ‌وقت نمی‌تونیم هر کسی واسه خودش بفهمه چیو بردگی چیو نگیره. منظور کجا باید وارد بشه کجا باید من یکی از دوستان ساعت خصوصیترین که واسه پیش اومده رو ولی یکی اصلاً آره آم. نه سوال من اینه که مثلا اگر تو در من یه درویی ببینی آم. و این میزان این درویی هم حالا زیر،, زیر حد قابل قبول باشه آیا آم. اینو باید برون بیاری یه جوری به هم بفهمونی که این میزان از درویی رو دارم یا دوتا استاندارد دارم در برخورد با مسئله یا اینکه نه مثلا اینو فدای دوستیمون بکنی و ساکت بمونی من اگه باشم نه سکوت میکنم که بگم دوستیمونه دارم پیدا بکنه نه اینکه میام تو روش خیلی علنی بگم شاید رابطه‌مون با اون دوست کمتر بکنم یعنی وقتی دو ازش ببینم حس جالبی ناشته باشم نسبت به اون آدم کما اینکه دوستان نموری داشتم یعنی اینکه احساس کردم دوست خوبی نیستن و آروم آروم کنار گذاشتم <تصفيق> <تصفيق> دیگه دیگه چی بده تو دوستی؟ دورویی، روی از پیش تعریف شده؟ اس خیلی هم بده که فقط موقعه مثلا یک دوست، دوست مثلا دوست دارم که دوستامه بعد خیلی حسرتی پیدا می‌کنم که هر وقت موضوع پول میشه با من تماس میگیره یعنی اینکه هر وقت مشکل پولی داره که میدونم هر وقت که نیاز به راه حل پولی داره احساس کردم خدایا منو یه آوبربانک که البته اینکه پول ندارم مثلا لو زماین که دوستش بشه بگی مثلا از عین بذارم پول بده نه مثلا میگه میدونی از کجا برم وام بگیرم حتی مستقیما هم از تو پول نمیخواد اه. ولی این مسائلی که با تو مطرح میکنه کلا هولومچ پول میگردن شاید یه شبه شبه جوری شبه ب... یه جوری تو اه، اه، اه، یعنی در یه موقعیتی رابطت با شکل گرفته که تو رو به عنوان حلال مسائل مالی میبینه دقیقا میگه اصلا این بدن میاد دقیقا نگاه میکنه شاید این ب... یه مقدارش به خودت برمیگرده آخه شاید خیلی هم به خودم برای نگرده شاید کجا میدونم به این فکر کنه شاید پدر من خیلی بردش خوبی باشه, باشه. ولی خب پدر من به من طرف میداره پدرت با من خیلی بردش خوبه نه خیلی بردش خوبه بعد نور میداره یعنی حتی اقل میتونه زندگی نورمالی رو بکرنه مشکلات آه. مالی کوچیکو رو میتونه برطرف کنه آره آره میتونه اینطوری شاید میتونه چون یه زنگ میزنه میذارم، من سانچ میذارم، من اپلاک می‌زنم، شاید بتونه بده، ولی اینطوری نیست که یهو میلیاردر سردرتنایی بشم، من توی خونه‌ای می‌ذارم دارم شما صحبت کنم، نه. توی اتاق نو متری دارم با شما کنم، خیلی عادی. ولی می‌گم این دیشب <متزدنم> از یه اتاق نه متری به من زنگ می‌زدی. چرا؟ اشتباه کردی. شوخی که ببین من من فکر می‌کنم که آدم وقتی بگه دوست می‌خواد پول بده، یه بهتره که قید اون یعنی یا نبد بده یا قید اون پولو بزنه. پولو گرفتنشو بگیره. آره یعنی من فکر همیشه قرض باعث از بین رفتن دوستی میشه. موافقی؟ آره آره من اگه من خودم یکی اگه پول قرض بدم واقعا یک وقت با دوستام اصلاً روی اینو ندارم که مثلا سال هم بعدا بهش بگم پول من چی شد. ولی معمولا اونا روی اینو دارن که بدن پولتو. آره دمت. اونا میتونن در این. تو روی با هم تقزه کنه <تصفيق> <تصفيق> بعدم به مثلا که پول میدی دیگه اصلا پول مال اونا بوده از روز اول نبوده که تو براش عمل کشیده باشی به در تشاورده باشی بعد ده لطف ده. کرده باشید در یه سری چیزا رو برای خودت نندی گرفته باشیدی وظیفه بوده که وظیفه بوده. بوده که انجام دادی و بهتره که اینو به, به کررات دوباره انجامش بدی آمان یه،, آمان یه, یه چیز دیگه هم که دوستیو خراب میکنه منولوگه نظره دوست. چیه؟ یه ذره با دیالوگ نمیتونم مثلا داره منولوگ همیشی؟ یعنی دیالوگ کتاخ شده؟ منولوگ؟ نه, نه، منولوگ یعنی که به این ما معادل فارسی برایش نداریم ترزومش میشه تک سخنگویی یعنی که وقتی که حالا با دوست تلفنی هست میزنی یا حضوری هستیم اون هیچ علاقه به شنیدن درن حرفای تو نداره فقط میخواد که حرف خودش رو بزنه آها، داستان خودش رو میگه و اگر هم تو شروع کنی به حرف زدن یه جوری جمع جورش و منتظر میشه که حرف تمام شه و اون دوباره شروع کنه به داستان خودش و هیچ آها. از تو سوال نمیپرسه کارایی که داری میکنی رو پیگیری نمیکنه هیچ علاقه و اشتیاقی نشون نمیده کنجکاوی نشون نمیده به اینکه خب بله داری میری سربازی؟ بعده چی که ها میخواه کجا داری میری سربازی؟ الان احساسه چیه که داری میری سربازی؟ یعنی خودش محور همه یه آره، هم آره ده ده. ولی در این حال دوست تو هم هست؟ آره، آره، دقیقا کاملا معافق هم هست؟ و این موضوع شاید یه درسیه آقا بیشتر باسه و خانم ها من اینطوری که دیدم یه ذره این خودمحوری کمتره تو یه <تصفيق> اصلی هست از جادی بزرگ که نمیدونم اشناس میشه نه حکر که ایرانی که بگی داره بسیار دست نه آره آره آره سایتی شدیدن ولی نمیشه آره، فمینیست میگه هر کتی که اعتقاد دارد زن و من حقوق برابری داشته باشن فمینیست هستم من هم قسم فمینیست هر کسی که معتقد زن بعد باید حقوق برابر داشته باشند سمینیست است. سمی است یعنی این نیست که اون آدمی که چه میدونم دوزو من میاد مرسی پیگیم کن نه اصل تحریف سمینیست طبق این تحریف میکنم سمینیستم اینم به حال تعریفی من اینو نمیدونستم ولی خب آه. بسیار خوب به نظرت ما چونست این بعضی از پیچیدگی های دوستی رو بحث کنیم, کنیم راجبهش فکر نمی کنم چون اولن که داریم یک موضوع انتظاری انسانی سانی صحبت می کنیم و با یک گع دوصدده ای به دو انسان فکر می کنم همچین معزله به شری گفتم حلش کنیم گفتم به نظر تونستیم بحث کنیم راجبهش بهش درصد بحث کردیم الان ام. همینعان بحث کردیم خندیدیم با هم گفتیم و خوب بود. دوست داری با من دوست بشی بعدا منو قفهگیر کنی یه ما یه چیزی برایام ولی hmm من هرگز برو میدم زنگ نزنم بری پول ب شاید قفلگی را کنم. الان اینکه قفلگی چی باشه رو دیگه واقعا نمیدونم. ولی خب حدس میکنم یکی از دامانی هست که خیلی تاثیرگذاره و خیلی به اسم و بلگه منابع تو لیست دانشگاه شخصی منه. پس من با تهیه نم. این جوانم تماس نگرفتم. فکر به تا زنگ کنم هر هم به موضع همین آره هر زنگ زنی ببینیم تو خیلی متأسی چیکار میکنی؟ آره آره آره. کجا قراره بروی؟ والا در جنیانی که کل خدمت و سربازی روی یک مندی به نام ته میچرخه یعنی آشنا و آشنابازی یعنی با شما قبلا دوست نداشتم واردین هیته بشم دوست داشتم مثل هزاران سربازی که شاید هیچ آشنا و پولیسی چیزی ندارن دفترشم هم خود کنم وقتی دیدم سیستم ناعادلانه است منم تصمیم گرفتم که از طریق یک در آشنایی خودم رو وارد کنم و در همین وزین خدمت کنم. <تصفيق> ببین مهم نیست مهم اینه که بتونیم من خودم حالا شاید یه پادکستی هم به خدمت سربازی صحبت کنم چون من خیلی خدمت سربازی از نظر خودم جالبی داشتم ولی مهم اینه که خوش فکر بذاره یه چیزایی یاد بگیری یه چهار تا دوست پیدا بکنی اصلا میگم من اینطوری فکر نمی‌کنم من اینطوری نیستم که بگم ها اوکی بلندن حالا بنیم به خدمتی من زندگی برنامه دارم می‌خوام از این زمان حداقل اون 19 ماه این دو ماه بود که هیچ جایی ندارم گفتم اون 19 ماه می خوام کل زندگیمو پیش برم می گفتم بگم آتی زندگی وای که من دارم میرم خدمت نه زندگی وای نیستی منم مثل تو خیلی برنامه داشتم ولی همین برنامه داشتن کار دستم داد و باعث که خیلی عذاب بکشم توی اون مدت امیدوارم که این اتفاق براتون نیوفته ولی نه زندگی از همین لحظه و لحظات قبل جاری بوده و هست خواهد بود درسته این منظور من همین بود اینکه من خوام چیزی دیگه برنامه های زمینی نمیخوام متوقف کنم یعنی حداقل این 19 فرصت خوبی است کلا می تونی چیزا که بلد اونم حداقل درآمدی داشته قطعاً قطعاً این کار حیث هیفه هیفه آخه آدم الانطوری بخواد بره فقط یه تو تا پیدا کنه و بهش خوش بگذره شاید واقعا نابود بشه شاید خدا زمان زیادیه من دیگه نابود شدن ولی خب زمان زیادی خواهی داشت بعد از خدمت هم و نمیدونی باش چی کار کنی حالا شایدم بدونی چی کار کنی بعدی در صورت من خیلی خوشحال شدم که با تو صحبت کردم و امیدوارم که دوستایی خوبی بمونیم بعد از این هم برای هم دیگر بعد امیدوارم امیدوارم بسیار خوب خیلی ممنون که زنگ زدی خدا برمشی خدا شما خدا خیز. خدا خیز. امیر محمد زیایی الو الو سلام سلام امیر محمد چه خبر؟ سلامتی خوب هستین؟ خیلی ممنون سلامت باشین. چه کارا می‌کنی؟ ما هیچی دیگه امتحانا تازه تموم شده فعلا باید بیافتیم تو فاز درس و بله امتحانات, امتحانات ترم اول فاز درس؟ بله انطورا تموم میشد ما میافتادیم تو فاز بازی <تصفيق> ما برعکسیم ما اصلاً فقط تو امتحانا میافتیم تو, باز... تو فاز بازی ها. قبل از امتحانا بازی میکردین بله الان دیگه بازی تموم شد دیگه میخواین درس بخونین <تصفيق> از دیگه کم کم از روی اجبار باید شروع کنی به درس خوندن به درس خوندن بله شما چیکارا میکنین ما که نه امتحانی داریم نه درسی داریم نه دوستی داریم که بهمون زنگ بزنه با زندگی چیکار می زندگی هم که بدون دوست آخو چه زندگی شاید بشه زندگی کرد میشه بدون دوست شاید چون ام. من زیاد دوست ندارم ولی بازم زندگی ما میکنم زندگی آخو چه جوری زندگی میکنی اممم شاید شایدم ام اصلا زندگی نمی کنم چه جوری زندگی میکنم, میکنم؟ آله آره دیگه خیلی دیگه مثل مردم دیگه خب مردم دیگه دوست دارن م... نلوزمان همشون من هر من تا جایی که میدونم اکثر آدم و دوست دارم م... من فکر نکنم داشته باشم زیاد ولی اکثر دوستام ظاهرا دوست هستن ولی اگر یه مشکلی پیش بیاد محل اصلا به محلم نمیزنم یعنی تو معتقدی که دوست آن باشد که گیرد دست دو دقیقا دوست ظاهری حالا یکم دارم دوست ولی دوست واقعی فکر نکنم داشته باشم دوست ظاهری چند تا داری؟ مم. نمیتونم بهشم را ولی با اکثر بچهای مدرسه دوستم ولی راضیت نمیکنه دوست داری دوست واقعی داشته باشی آره فکر میکنم مم. خیلی چیز خوبیه ولی من ندارم مم. چرا نداری چی شده که نداری فکر کنم بلد نیستم داشته باشم شایدم خودم دوست خوبی نیستم شایدم خودت دوست خوبی نیستی مثل من دیگه منم احتمالاً منم دوست خوبی نیستم که زیاد دوست ندارم اینم احتمالشه چه مشکل ما امیر محمد مشکل ما نمیدونم شاید توقع زیاد باشه خیلی استاندارد رو دست بالا گرفتیم آره واقعا آره <تصفيق> آره زیادی ما سخت میگیریم مگه واقعا دم از یه دوست چه انتظاری داره انتظار مثلا اگر یه مشکلی داشته باشیم قشنگ گوش کنه به حرفمون یکم هم دردی بکنه با مشکل هم مثلا نداشته باشی اصلا م... فرض میکنیم که شما 90 درصد معباقه مشکل نداری خب تو چند درصد من باقی مشکل داری خودت مشکل من فکر میکنم 90 درصد من باقی مشکل داره مشکل داری 90 درصد بله باقی. آدم مشکل داری است خیلی مشکل روانی خیلی دارم مشکل روانی که همه دارن نه من موضوع مشکل غیر روانی بود مشکل غیر روانی م... نمیدونم مشکل آیند و, و نه اینا اینا رو گلشبان مشکلی که بشه گفت مشکل مشکل, خب. مشکل... اونو مشکل جهان اولیه مشکل جهان سومی چند درصد مبالغه داری مشکل جهان اول جهان جلون... باشه جایی شکسته باشه نمیدونم خونه‌دا اینا... آتیش گرفته باشه به اینو میگن مشکل جهان سوم مشکل مش... من میگم مشکل اولیه چه؟ مشکلای اولیه منظورتونه حالا من من اسمشو گذاشتم مشکلات جهان سوم مشکلات جهان سبومی. این فکر کنم صفر باشه پس... پس تو اصلا 100 درصد, درصد مبالغه دونو مشکلی شاید پس دوست. چرا دنبال دوستی می‌گردی که به هنگام مشکل بتونه به برسه پرسه؟ به دوست داری دو کنم نیاز باشه. یکی که همسند خودت باشه درکت بکنه، تو رو درک بکنی. آه ببین باز استاندارد داره میبری بالا. آهان. اون تو رو درک بکنه، تو اونو درک بکنی. خب بگو نمیخوام دوست پیدا کنم دیگه. یعنی همچین دوست پیدا نمیشه؟ مال و تا حالا پیدا نشه، نمی‌دونم. <تصفح> شاید پیدا کردنش خیلی سخت باشه. شاید هم سخت باشه. اه. خب اه، یه راست قضیه استخدام چطور شد؟ کسی اخت... استخدام کرد؟ چیز نیست. موضوع این هفته دوستیه. دوستی؟ آره، از او... چی داریم راجع بهش صحبت میکنه؟ آها. استخدام من هیچ چیزی نگرفتم، هیچ اه، اه، پیشنهادی دریافت نکردم. اه. من الان یه ایده ای داشتم اه. اه. که بیام یه پیج تو اینستاگرام درست کنیم. که مردم هم شما رو بشناسن هم پادکست و هم پادکست شما رو بشناسن اینستاگرام مگه مال عکس و اینا نیست من اه. نیستم اونجا ولی شنیدم مال عکس آره بره عکس ولی برای پیجم استفاده میکنن اه. میشه استفاده کرد نظرتون چیه والا نظری ندارم من من چون تو اینستاگرام نیستم اه. اصلا حالا هوا و محیط و آدماشو نمیشناسم چه اتفاقی میفته شبکه‌های اجتماعی اصلا نیستین شما تو تو شبکه‌های اجتماعی نیستم دیگه نه اونایی که معروفن من نیستم نه یعنی تو غیر معروف <تصفح> هستیم نه توی تو اونام نیستم یعنی او... اونا من اصلا شبکه اجتماعی خودمو دارم دیگه وبلاگ هم خود شبکه اجتماعی دیگه آهان اینم درسته به حدود 25 اوز و سال. 25. همین هم خوبه بهتر از هیچیه. بهتر از هیچیه واقعا. آره. خب حالا میتونیم یه پیج بسازیم. حالا من پیچو میسازم. تو اصلا میتونیم بساز بسازیم چی میشه دیگه؟ باشه ببینیم چی میشه؟ ببین فایدهایی داره نداره. یه تجربه ایم که اسپیک کنی. یه تجربه ایم اما فاینکس میکنی. راستی سال. خیلی میخوام بدونم شما چطور از بکه یاد میگیرین؟ من چجوری از بقیه یاد میگیرم؟ بله شما که میگین از همه چی میشه یاد گرفت چطور میشه از یه نفر دیگه یاد بگیری؟ چجوری میشه از یه نفر دیگه یاد بگیری؟ ببین دیدی این معلم رو جواب سؤال رو ندارن اولین چیزی که میگن؟ خیلی سوال خوبی پرسیدی؟ بله یه <تص> اولین چیزی که میگنینه خیلی سوال خوبی پرسیدی؟ uh, خیلی جوابی نداره ببین جوابشو دارم هم میتونم جواب خیلی طولانی بهت بدم که نزگیت شاید سه ساعت طول بکشه هم میتونم جواب کوتاه بدم کدوم دوست داری؟ من والا دوست دارم که جواب بلند باشه ولی میتونی جواب کوتاه بدیم تو ببراکتون یه مطلبی در مورد منتشر کنید آره اینم اینم فکر خوبیه ببین کوتاهش اینه که از هر چیزی رو اگر شما چشم گوش تو بهش باز بکنی آه. و تمرین بکنی در دیدن آه. و شنیدن و اصولا هر حسی که به این ما از طریق حواستمون حالا بعضی هم میگن پنجگانه بعضی هم میگن ششگانه نمیدونم شاید یه سری هفتگانه و هشتگانه هم داشته جلده. باشن ولی من خودم پنج را بیشتر ندارم آه. همین حواست پنجگانت تو شما به طور مادرزاد تو بعضی قوی تری مثلا بعضی بهتر میبینن بعضی بهتر میشنون بعضی حس بویاییشون خیلی قوی از بعضی دیگه است ولی همه اینا با تمرین میشه تقویتش کرد مثلا اینایی که میرن متخصص در قهوه میشن اینا حس بویاییشون باید خیلی تقویت بشه که بتونن قهله های مختلف رو بو بکنن یا اونایی که گلشناس خیلی خوبی مثلا تو گلوگیا استعداد دارن هیچکی که نمیتونه تو گلوگیا به یه تخصص و تجربه برسه بدون اینکه بویدن و دیدن رو به در خودش تقوییت کرده باشه درست حالا یاد گرفتن از بردیه یا از هرچی هم همینه ببین شما اگر مثلا بخوای از آسفالت خیابون یاد بگیری اه. یا اصولا از آسفالت بخوای چ... چیزی یاد بگیری خب چجوری میتونی با این تدیده با این جسم با این چیزی که قراره به تو چیزی یاد بده ارتباط برقرار کنی و ازش چیزی یاد بگیری یا از طریق لمس یا از طریق دیدن, دیدن. و پیدا کردن الگوهای مشابهی که توش وجود داره مثلا نقش های خیلی خوب چیکار کار میکنن اینا خیلی خوب میبینن و مثلا اون گل آفتاک گردان که میلیون نفر دیدن ولی چجوری ونگوگ اونجوری میکشتش یا مثل عکاسا یا مثل عکاسا آفرین اینا کسایی که دیدن رو تمرین میکنن و فقط تمرینه یه کتاب امکان داره صد نفر بخوننش یا صد هزار نفر بخونن <تصفيق> ولی پنج نفر اون اون های کلیدیش و اون چیزهایی که یاد میده رو میگیرند و بعد از اینکه حالا شما اون پیام رو گرفتی از طریق هواس پنجگنت که در حقیقت اطلاعات رو شما دریافت میکنی بعد زمان تبدیل این اطلاعات به دانش و به خرد یه چیزی فراتر از اون اطلاعات و اونجا زمانی که حالا شما تمرین باید کرده باشی که اطلاعاتی رو که میگیری رو در حقیقت اپلای بکنی به زندگی خودت به اه. کار ببریش در زندگی خودت یعنی تو کانکست زندگی خودت عذر که باز برای این کار شما نیازمند اینی که تمرین کرده باشی که خودت رو ببینی اگر کسی تمرین نکرده باشه در اینکه خودش رو ببینه اینکه در کجا زندگی میکنه در به صلاح دوروبر خودش چه خبریه چی میگذره چه نیازهایی هایی به وجود اومده چه نیازهایی وجودش دیگه از بین رفته دوست. این آدم دیگه در کانتکست زمان خودش نیست افکارش، نیازهاش، هاش آمالش، ترسهاش اینا خیلی اوت اف context شده آه. و تو خیلی آدمایی رو میبینی که اوت اف context فکر میکنن اوت اف context ترس میزنن اوت اف context آرزو میکنن این ای خیلی رایجه به خاطر اینکه به این که تمرین نمی تمرین نکردن، تمرین نکردم, تمرین نکردم. که ببینم الان دورو برم چی میگذره مثل کسی میمونه که نمیفهمه که سیر شده باز غذا میخوره یا نمیفهمه که ای نشه ازا نمیخوره اولین چیزی که آدم باید تمرین بکنه اینه ببینی که اصلا در بدن خودش چی میگذره در احساس خودش چی میگذره و اینا چه تغییراتی میکنه چه, چه الگوهای مشابه یا متفاوتی وجود داره درش همین رو که تمرین بکنی بعد یاد میگیری که از بیرون از خودت اطلاعات رو بیشتر جذب بکنی و این اطلاعاتی که جذب میکنی اونایش که به درد مخوره رو زودتر بریزی دور اونایی که به درد بخور هست و در زندگی تو اپلای میشه رو بیشتر و بهتر به صلاح اعمال کنی اپلای کنی به کار ببریش در کانتکست زندگی خودت این میشه یادگیری تا هیچ،, هیچ فرمول خاصی نداره همش همش تمرین دیدن و شنیدن و بوییدن و چشیدن و اینه درسته یعنی باید از خودم شروع بکنم نزدیکترین نزدیکترین چیزی که داری و ارزشمندترین چیزی که داری و بهترین منبعی که داری خودتی خودم. که بهترین و دقیقترین اطلاعات رو میتونه به خودت بده و تا زمانی که این رو نتونی بشناسی و نتونی ازش اطلاعات دریافت کنی خیلی بعیده که از مثلا اساتید دانشگاه هاروارد بهتونی چیزی یاد بگیم درسته خیلی ممنون چون تو آخرین تماس گیرنده هستی و وقت پادکست ما م... حالا کم کم داره تموم میشه بله. آیا حاضری که قربانی منولوگ بشی؟ متوجه نشدن <laughs> <laughs> منولوگ میدونی چیه؟ منولوگ؟ دیالوگ فکر کنم یعنی صحبت بین چند نفر درسته؟ دیالوگ صحبت بین بله بیشتر از یه نفره منو یعنی صحبت درونی؟ مونولوگ یعنی که یه نفر حرف میزنه بقیه گوش میدن. آها، قربانی مونولوگ متوجه نمیشن. هیچ وقت حالا قربانی مونولوگ نشودی؟ اصلا نمیدونم چیه. مونولوگ یعنی که مثلا در یک موقعیتی بوده باشی که یه نفر حرف بزنه، و تو دیگه نخوای به حرفش گوش بدی ولی اون اصرار بکنه که حرفش ادامه بده و تو که میای حرف بزنی، حرف تو قطع کنه و به حرف خودش ادامه بده، به حرف تو گوش نده. علاقه‌ای و کنجکاوی به حرفایی که تو می نداشته باشه و باز حرف خویش رو بزنه این میشه قربانی مونولوگ با این تعریفی که شما دادید فکر نکنم هیچ وقت هیچ وقت قربانی منولوگ نشدی نه خب پس خیلی خوش شانس بودی <تصفح> ما،, ما امروز حرف زدیم در مورد دوستی و اینکه چالشاش چیه چرا بعضیا دوست کمتر دارن مثل من چرا بعضیا بیشتر دوست پیدا میکنن چرا بعضیا البته تو نگفتی استانداردت بالاست و دیگه بحث رو بردی به سمت یادگیری آها چطور؟ اه... چون منم فکر میکنم استانداردم و بالاستی چجوری میشه این استاندارد آورد پایین راحت تر با آدم و با آدم بیشتری دوست شد استاندارد و میارون بیارین پایین اونقدر سخت نگرفت نمیدونم چطوری چرا آدم با هر کسی که تو کوچه خیابون میبینه نمیتونه دوست بشه چرا حتماً یه نفر بعد؟ این همه شرایط داشته باشه که بتونه دوست ما بشه. آره، چیز بدیه. مگه میخوایم مرور استخدام کنیم یا مثلا میخواد کنکور سراسری قبولش بکنیم؟ نمی‌دونم مگه می‌خویم بهش وام دویست میلیونی بدیم؟ نمیدونم می‌خویم دوست چیم باش دیگه. چرا اینقدر واسه شرط فروض می‌ذاری؟ هم نیست. شاید چون, شاید چون میترسیم شاید چون خود کمبینی داریم. شاید چون دیگران آنو برتر میدونیم خودم فکر می‌کنم اینا باشه. آره. میخوای یه یه, یه میکس می‌خوای پیدا کنی که هیچ کدوم از این ریسکا توش اتفاق نیفته. آره. اهمو دوست ندارم. اپهامو دوست نداری. اوه، آره، آره اینم اینم که میگی میکسنس میکنه می‌کنه. اپهامو دوست نداری. میخوای یه قطعه یه آدمی پیدا بکنی که هم ترازه خودت باشه. ترجیحاً یه یه میلی‌متر پوینت ترس خودت باشه. دورد. ولی خیلی هم پوینت خودت باشه خوب نیست. <تصفح> ولی گیم از یکی دو میدیمش پایین تر از خودست که اون اون حس نکنه که از تو پایین تره ولی تو یه ذره حس کنی که اون از تو پایین تره آره این خیلی تاثیر داره یه چیز عجیب بریبیه حس خوبی بهت میده یا مخصوصا کسی که از خودت فکر بالا بالتره واقعا مشکل نزدیک شدن بهش آره آره هی میخوای که یک شرایطش پیش بیاد اعتماد به نفس نداری فکر می که مثلا اون نمیخواد با تو دوست دوستشه ولی از دید اون تو از اون پایین تری و اون خیلی دوست داره که با تو دوست بشه آره این حرفوی بهش میدی میدونی خ آره اینا رو میدونیم ولی تو عملا بهش ایمان نداریم ایمان نداری بهش ام. ترسا یه چیز درونیه یعنی اطلاعاتشو روداری ولی بهش باور نداریم ام. یعنی میدونیم این بر ما نداره ولی باور نداریم بهش آره و من هنوز نتونستم بفهمم چطور میتونی باور پیدا کنی به این اطلاعاتی که داریم. منم نمیدونم فهمیدی بهم بگو. حتما. حالا تو الان میتونی قربانی مونولوگ بشی و من من یه جوری حرف میزنم که انگار هیچ کی نیست. مهم. و ادامه میخوام پادکست رو تموم بکنم. خب. و تو مثل یه شنونده ای میشی که خیلی هم کوتاح ها مثلا فکر نکنیم زیاده. خب. و بعدم و بعدم من تلفن رو قطع میکنم یعنی اصلا انگار نه انگار. بدون بدون اینجا و... نه خدافزیمون رو علام میکنیم <تصفيق> باشه ولی تو قفل نمیکنی فقط نقشت مثل, مثل مثلا یه, یه کامپیوتره. یعنی <تصفيق> <تصفيق> هیچی نگم؟ هیچی نمیگی بخاطی که منولوگه <تصفيق> باشه در این حال حضور داری و من پادکست رو تمام میکنم فکر میکنم مثلا اینجوری اینجوری بهتر زمانی که هیچکی نیست توی این اتاق کنفرانس تلفنی من حس،, <تصفيق> حس میکنم که یه گزار عجیب بری وقتی تنهایی با خودم حرف میزنم تو این کمک کمکو به من میکنی ولی در این حال مونولوگه باشه چشم بسیار خوب خیلی ممنون که تماس گرفتیم خواهش میکنم ممنون از شما که وقتتون دادیم خواهش میکنم فعلا خداحافظ شما خدا قد کنیو میدونم خب امروز سه تا تماس گیرنده داشتیم این نشون میده که من دوستای زیادی ندارم که بهم زنگ بزنن شادم نشون میده که من دوستایی زیادی دارم و از روی دوستی و محبت زنگ نمیزنن در هر صورت هفته دیگه نمایشگاهی من قرار شرکت کنم به نام نمایشگاه کشف امکان و معنا یا کام که دقیقا ساعتش و روزش منطبق با این پادکست یعنی دوشنبه ساعت چهار به بعد هر کاری کردم نتونستم تغییرش بدم بنابراین روز دوشنبه هفته بعد ما این پادکست رو نداریم من سعی کنم حرفایی که توی اون نمایش که بزنم رو ضبط بکنم و به جاش بذارم روی اینترنت که شما در عوض این پادکست بتونین بهش گوش بدین پادکست بعدی ما میشه دو هفته بعد بازم لطفاً زنگ بزنید 23 58, 48, 58. روزهای دوشنبه بجز دوشنبه هفته بعد یعنی شیش بهمن شیش بهمن ضبط پادکست نداریم موضوع این برنامه دوستی بود من خیلی دوست کمی دارم تا, هفته... تا دو هفته بعد خداحافظ I don't care if me care Oh, If you don't care that I'm lonely Why don't you just